اما توی خبرها داشتیم پلیس فتا که می‌دونی خواواسش به همه چی هست دیگه جدیدن این پلیس فتا که خواواسش به همه چی هست جدیدن مرکز های پلیسی یا همون سامانه 110 خودشم رو اندازی کرده وظیم این به بعد به محض اینکه توی اینترنت مورد آزار اذیت قرار گرفتین میتونین گوشی رو بردارین زنگ بزنین به سامانه 110 پلیس فتا تا سری تیم زبده مجازی به صفحه اون طرف مزاحم اعزام بشن رو بذارن کف دستش جالب میشه فکر فکر این جباد پشت رو که من بلاکش کرده بودم این قیافش چجور دوباره داره پیغام میده رفته یک کانت دیگه ساخته چقدم سیریشه اه، چی نوشته عزیزم وبکم کم میدی ای مردشور تو ببرن بچه پرو پر پس نویسم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 چی چه پر روه به تو چه ما الان چی تنمه بیشور چه تنم به نفسی هم داره با اون ریختش الان رو یه سری میکنم بذار الو سامانه یه پلیس و فتا پاسخ بوی شماره 494 بفرمایی؟ سلام خسته نباشین آقا یه پسر است دائم به من تو فیسبوک میسیج نده مزاحم میشه آیدی یا اسمشو میفرمایی؟ اسمش جواد پشت تپیه اسپلش اینجوری میشه بله اجازه جواد بشید. که همون جواد پشت تپیش هم میشه پی او ایس ایچ نیازی نیست پیداش کردم اکس پروفایلش همینه که پشت وان چجور مزاحمت ایجاد کردن خانوم؟ معلومه دیگه مزاحمت ناموسی خیلی ببخشیدا هی میپرسید چی تنته بله؟ چی تنته بله رو الان برخورد میکنم یک لسه اجازه بدید مرسی دستتون در نکنه شما 24 ساعت فرصت دارید این رو غیر فعال کنید در غیر این صورت باهاتون برخورد میشه جلده. از طرف پلیس فتا خب پیغام ارسال شد خانوم اوه هیچ حقش خیلی بی بود ایک بیری. ای, ای ای ای این باز پیغام داد نوشته این گولاخه کیه به من پیغام داده میگه پولیس فتاس یا دوست پسرته بله. خانم شما جواب ندید عقب بیستید بنده برخورد میکنم شما به جرم توهین به مامور قانون باز داشتید دستتون رو بذارید پشت سرتون و از جاتون تکون نخورید این هم سند شد وای چقدر حیجن انگیز اون وقت آدرسش هم داریم بله خانم محترم اجازه بدید بله متهم از آمریکا کانکت شده ظاهرا شهر سان فرانسیسکو واقعا مطمئنی بله خانم باید از طریق پلیس اینترپل پیگیری بشه وای همیشه میگفت بعد بیای با هم بریم سان فرانسیسکو من فکر می‌کردم منظور بعدی داره ببخشید میشه من هم پس بگیرم خانوم شما شکایتتون رو پس نگیرید ما نمی‌تونیم کاری بکنیم فقط میتونید بلاکش کنید نه بابا چیچ رو بلاکش کنم بله؟ مرسی اصلا فراموش کنید خدافظ به هر حال توصیه پلیس فتا به شما اینه که دور بابا توصیه تو بشه درد من میخوره. چیکار کنم حالا آخه من از کجا میدونستم این با این اسم و قیاف واقعا سان زندگی میکنه <تصفيق> چقدرم کیوته بذارم حسیش بدم تفلی زهره ترک شد عزیزم هستی الو جواب بده دیگه میخوای بدونی واقعا چی تنم الان قهر کرده فکر کنم و برنامه رجوع پس ورده چند تن لایک داره بگو چی گفت نگه بس چی اگه خودم رو شعرار میگفتم که مارک باید کل فیسبوک رو میزد به نامم دهکی بس نمید آیدی آیدی من چی؟ آیدی من یاداشون چیه این فیسبوک همه ملت این روزا سرشون تو شد اکبر میکروفون تلا اکبر میکروفون تلا بدون فاصله ها فاصله